الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآل سيدنا فاطرنا المحشومين رادع سجما تعالى دارهم الشريف اللهم اشر عنا الشيه الرحيم الرحمن الرحيم اخص بحث بود در مساله کامل منه از عمل به و ولو قاسل بشه از قیاس یا به قول محدث استرابادی قاسل بشه از غیر از کتار بشوند هر سوری از قدوز قرمی زبان توسط ایشان روزایت مدهزان و مرتبی مطرح شد در کتار و نصفه مختصری در این باره نوشنب بعدم خب ایجادی خط فکری معینی در میان شیعه شد که معروض به خط و دیروز عرض شد کلماتی که بعد از این مثل فرسیم سید سر در شهر یا و محقر محرانی یا دیگران دارن یه مقداری روگوی دیگری خیلی از اون حرفی که مقره این هم بودن حالا مقبر بحث روی کلام محدث استراغازی که آخرین این بحث رو مصرح کردن و بخص در اینجا وید این مرموم استاد به استاد ایشان به اینجا رسید که آیا تغییر و بک به علم ممکنه مثلا شارعه شما علمی که از راه ما این یعنی دست میاد خود نیست و اون حقیم ثابت نیست و اصولت حضرته احکام و مثال بارزش عقم صلاح به دروک شمس آیا این اطلاق داره شامل علم و جردش یا اطلاق نداره ناظر به علم و نیست و یا اطلاق داره شامل علم هر دو میشه این بحث در اصناب اینجا است من رو بنایمی نظرم ببارکشون این بود که مثل عقل سلاکل دورو که شمس علاقه سوالی اطلاق نداره که تو آلم باشی یا نباشی اون خلاصه نظری شد نظر و استاد هم برای این است که اطلاق داره تو عالم باشی یا نباشی این هم خلاصه نظری شد اولا این هم من در تقریب این دوتا مطلب مرمونایی این فرمان که خود رو که میشه مقیده به علم به خود رو اصلا بگه عظم سلاب در روک شمس اگر حالم باشی به این وجود چون این علم بعد از وجوبه نمیشه در خود موضوع و گفن عقص بشه چون علم نمیشه عقص بشه خواهی نخواهی اطلاق هم نمیشه چون نسبه به شون و ملکه است. اگر تغییر به علم نشه اطلاق هم به لحاظه علم نمیشه این خلاصه نظر مروم نمیشه خب ما از اون طرف هم روایات بیداریم که ظاهرشم صورت حصول علم در باب قیاس امام نمی از عمل به قیاس حتی در صورت افاده ایم نمی فرمد ما اینجاها رو قادم میشیم به یک راه دیگری که اسمش نقیجه الاطلاق اطلاق رو نقیجه صلی اون به این نفره که یک دلیل دوم بیاد. نه خود عرم صلاح دروق شمس این عرم صلاح دروق شمس اطلاعا نداره قبیل هم نمیشه این عرم صلاح خیلی حساب جمع یه دلیل دوگو میبیاد بگه که تو اگر جاهل بودی این حکم تو نیست این میشه یا اگر تو مثلا از فلان راه علم کردی این حکم نداری این اسم میشه ایشان گذاشن نتیجه تا و میشه نتیجه طور اطلاق دلیل دوم بگه که فرز هر راهی این پیدا کردی اون حکمی صادقه این نتیجه طور اطلاق پس ایشون در کتاب واحد میفرمانه اطلاق نداره احتیاج به این کتاب دوم داره به یک جهر دوم داره تو اون جهر دوم میتونه نتیجه طور اطلاق باشه یا نتیجه تغییر باشه وقتا فرمیدن نسالشن در سریعه از واقعه بود جهر و اخفاد شما توی جهر و اخفاد با این تو جهره اگر اخفاد کردی نمازتون درسته خب اون دلیلی که میگه نماز باز نماز روزانه جهر باشه نماز روزانه شون اصلا در برجوان تعلیم شده در روزشون شخص دیگه دیده میشه یای بلند کردن شهر در اطاقه تارید بود فرمینا نبود صلاۃ برنماخنه به نماز شبغنن کسی اون است. در صلوات جهریه در صلوات نهاریه اخفاء هست, به نماز صبح اینکه نهاری هست در استثناء نماز شب اینکه که جز صلوات نهاریه در شهر چون پیغمبر در سایه شب میخونه حالا وارد اون بحث بشیم ایشون جای خودشون آثار داره که نماز شب جز صلوات نهاریه باشه جز صلوات لغیه باشه یک آثار خاص خودش داره که بحث خودش من نمی کنم داشت. اما روایت داره که اگر پس در نماز ظلم بود حق رو و اخفاد کرد نمازش درسته نماز ظلم جهر کنم جهرن اینجا به نتیزتا تقیید این دقیله به نتیزتا تقیید یعنی شارع مقدس اما اون حکم خودش رو که وجود جه بود یا وجود اخفاظ بود مقیبه به این میکن و به دلیل اول نمیشه اصلا دلیل اول اطلاق هم نداره نه تقیید داره نه اطلاق اما با نتیجه از تو تقیید میتونه به خود به این بکنه در مورد قصر اطلاق همینطوره با این که در حال سفر قصره اگر نمیتونست جاهل بود و نماز تمام روایت داره که اگر جاهل بود نمازش درسته مراد که نماز درسته حالا در وقت باشه اول وقت نمازش تمام خون حکم نمی‌دونه روایت داره که نمازش درسته و این مراد اینه که از اینکه نمازش درسته این طور ما تقدیر می‌کنه این حکم به نتیجت تغییر مقید به علم تحلیل ماست یعنی دو حکم رو پرلا هم گذاشتیم فرموزن در حال سفر باید قرص باشه و فرمودن اگر جاهل و تمام اون نمازش درسته پس معنیش این که این حکم مقایده به علمه اینطور می فرمون بیه در خود لسان دلیل قید نشده در دلیل دوم قید شده اسمیشون اسمیشون اسمش گذاشتن نتیجه تا تقیید میگن اشکال نداره و یه تغییر آم میدارن چونها اینجا تقییده به علمه این جای دیگه هم داره ایشون تحبیر آم بشن تحبیر به مطممم و جلد. یعنی این جل ناقصه با یه مطممم دیگه کامل میشه، با یه جل دیگه این مطممم جل اوله جل اول ناقص بود این تحقیلش نکن این خلاصه نظر مرگوم نایم این خلاصه شما روشن شد میگه اشکان نه ویل به علم نه م اگر جن نه اطلاق دارن شروع می نیست. اصللا نداره او صلاح ظ رو کشن مثل نظر به علم مجره شما نداره هیچ اصلاح هم نداره. از سال ضرلو کشن چقدر نداره شده که نماز وقت زوقه. شما خانه می بینه گفت یا جاه بین. اصللا هم داشته باشه نداره این. تحلیل مردم نایین تحلیل‌ها رو من به این صورت میگم چون این یک موارث بسیار لطیفی که شما الان قابل سر در دانشگاه حقوق جهانی هم هستین میگه شما در دنیا وقتی جعل حکم میکنید مثلا میگه هر کسی که دارای می که و این اندازه‌از بود اینا مدار مالیات شده تو این حکمش علم و جعل نخوا میده وقتی جعل حکم میکنه شما در مجلس شورا هستین جهل حکومت تو این جعلها و جعل ها علم وجع نخواهم دید بله ممکن است در از موارد تابع علم اون با توی زیرش باشه مثلا تفسیر یک تفسیری رو چه که اینو حکومتی میگنه و این کارش هم. مثلا در این صورت عمل او اشغال نداره مثلا اون بهتون تفسیری بده و بگم حالا هم بحث قانونیش و از قابل تفسیر و از قابل ماده رو بحث قانونی نمی کنه اون یک تفسیر یا یه مادهی میاد که مغیدش کنه به علم و الا تصور نایمی روشنشون پس این یه به شریعت نداره احکام این تحلیل مرمون نایمی و مرمون اصلا یه مقدار زیادی از رو تحلیل هایمون به اساس این مرمون دکنه تحلیل ما تحلیل ها قانونی هست رفتی به شریعت و دین نداره یه تحلیل اقلایی آمن اون تغییر و قراری که شما در مقام قانون کاری به علم و جهر ندارید حالا شما به از قانون اعتباط قانونی مثل اعتباط شخصی خودتون قیاس بکنید شما بچه تو میم نام بخرد خیلی نان نام بخر، اصلا نظر ندارید او عالم باشه یا جاهل باشید اصلا به علم و نظر ندارید که او عالم به این حکم باشه یا خوب دقت کرد. این خلاصه یه ناینی که شما توی مقام جد تو مقام اعتباه اصلاً اصلا اطلاق نداره که بگه شما جاهل باشی یا آله چرا؟ چون میگه تبییده به این که ممکن نیست اگر تبیید ممکن نیست یا ممکن نیست چون توابیشون رو عدد مده دیوار رو شما پور نمیدیم چون ممکن نیست باید باشی پور هم کش ات... اگر تبیید ممکن نشد مستحیل شد اطلاق هم ممکن نیست. این خلاصه نظر مرمون نایی پس ایشان نظر مبارکش در تحلیل قانونی اینه که به اصطلاح کتابات قانونی طبیعتا نه مطلقا نه مقیدا و به طبیعتا حال مطلق هم نیستن به لحاظر میشن اصلا نازر نیستن این خلاصه کلام میشن لیکن بعد وقتا چرا؟ خب میشه قانون معاید بشه به علم مشکل نداره داره بکنید. یا قانون جعل بکنی مثلا میگی شما به یکی سوی بگید کسر من ساعت پولان بره نان بخره اگر ندانه ساعت هشت شده ببینید اگر ندانه مقاید به علمش بکنی مشکل نداره که میگه اگر خوابید یک و مقاید به این بکنی این مشکل نداره فقط این تغییر رو باید خیلی لسانه دیگه, دیگه بیاریم، بیارید و این هم تغییر نیست نتیجه ت تقییره چون اسلام نظر که تقییر بشه نتیجه تا این تفسیر مرمونانی که فکر ما بیه خیلی ارتوی و واضح شد برد تو خلاصه نظر واردیش اشکال دوشتا. دیروز عرض کردم یادم براتون باشه شب این حرفا در سفارت وقت قسطوواد گفتیم دیگه اونجا اونجوری که اگر اگه قبل قسطوواد شده این دووم شون میشه اشکال واقعی با رو حل نمیشه چون شبم دیروز اشاره کردیم تکسا داشتیم گفتن حالا این بحث من بکنم. بحث دیگه حال بکنم گفتم بیخیال بابا درسم خاص دیگه نمیخوام یک بحث اینه که این اشکال شروضی هستن اشکال واقعیه با دلیل دوم هم نمیشه بحث دلیل نیست هر دلیل نیست نمیشه حقققیتش این کار قبول نمیکنه. کنه را اون بحثی که خلال بحثی که از میکنم شاید اینشان رو روشن این اولا تصویر بکنید خلاصه حرف مصبب نایین اول تصویر بشه که این مرگ بزرگوار چی فرموده تا این دنباله بخشه دیگه مرحوم استاد در ایشان اشکالید بعد اون مثال هم که ایشون دو مثال مثال دارن مرمون استاد برکشان اشکال کردن ایشون فرمودن به این که این که میگی تغییر ممکن نیست این درست این که میگی تغییر اگر نشه اصلاف هم ممکن نیست این نمیشه و ایشون میگه که ایشون اینجا نوشتن که در بحث تعبودی و توصولی نوشیم و بعد ایشان این میگه ملخص کلام ان تقابل طرف شخصوصه تقابل بین التقییر و الاطلاق نه امکانه من تقابل عدم بل ملک که شما زکر با قدسه بود لعدم الله اطلاق اقوار کنه اندر تقییر پیماکان و ایشون قبول میکنن که تقابلشون عدم ملک من احتمال خود من میدم حالا اینجا این آقایی که چاپ کرده از این کتاب مصباح کرده یک کاشی در نفسه ها در هم مذکورون که محاضرات الان سبیل فرض در تن از ظلم که حالا یک ایک خاشی این آقایی که چاپ کرده نمیشونه چیه همه سیناهای بزرگون در اینجا اعتراض میتونم مهمونست لیکن اونی که من تو زنم تو زنم خولم که حدود 8 سال عادت نمی شه کمتر و اصولاً سال کمتر بشه این جزء است که برای ما هارپولی تعامل عدم ملکه و تعامل ساختار عدم ملکه نمیدونه ظاهرا من جال قرار می‌گیره به نژاد همینطوری بعضو محاضرات می‌کنی تو بحثی فعلا که من خدمت ایشون بودیم شادرا و مرار عزشان شنو میگن غیر شده که تعامل بین اذهات تعریف تو تعامل سر و ایجاب میدونن متقابل عمل علملکه بنظر من اینجا ای کی از دست ایشان در بحث ظاهرتن بله مهم بالله بله که این توی محاضرات اینم مطلب حاشیه‌شان درسته این مطلب رو که تقابل ترویج جواز بله و تنزل نا و تقابل عمل در مورد قابل این هست اما ایشان به صورت مطلق یعنی چراران در ذهن من هست در مدارک ذهن ما اموالی‌ی قوردی صرفه نیست که ایشان و جز مبانی روشن و ثابت ایشان بود که تقاول بین اطلاق و تقیید و تلوی ایجاب می چون اطلاق قدم بود و کرارن می که اگر جای تقیید مستقید شد اطلاق ضروریه این جزوی مبانی و واضح ایشان من از داره ایشان مرموم های بهتسودی مرموم های رحمه الله این مطلب رو در اون جوره نوشتن شاید مثلا چیزی در کلمه ها تو استال بوزن بوده چیزی بوده به الله خب این چون دوره های فرده ایشان سلبون یا شارون میشن و ما ها موقع نبودیم یا حاله این مطلبی که اینجا آمده این احتمالا مقرر بد نمیشه این آقا مخاشی کرد کرده این اعتراک ثابته که بحث نداره اینجا دو مسلم ها دیگه آلوکوی تقابل رو بین اطلاق تردی بله ایشون میتونه تقابل <تصال> و امکانه و امکانه بس هم بگیم و این تنرزم نا و قل نا اینجوری چیزی اینجوری با سویه باید و ایشون قطعا تقابل اردن و ملکه این مبانی مخالف بیشان با استادشون منان ناینه چیچم اینه ناینه اردن و ملکه هم به همونم صحیح ایشان سلب و ایجاب بگنم به یک اون هم درسته به یک معنی طالب شد مو... الی ما... الی من... حالا یک اشاره میکنم این بسته تو کد من گوردن شو، کلا بعد خود مازد هم گفتیم چرا ما از درخواستش در آیا می‌دانید که ایشون مورد مقام و ثبوت اثبات در مسعودی که در مسعودی که در مسعودی که در مسعودی که در مسعودی که در مسعودی ما در مسعودی که در مسعودی هم در دوره که مقام اصلاً اصلاً ما در مسعودی که ما اطلاق در مسعودی که در که در مسعودی که در در مسعودی که که در مسعودی تغییر اون در مسعودی برای در مسعودی که در مسعودی ذکر هم راه در اینجا کامپلیتاست خب که مثلا زرف باشه و زرف نباشه خب این معلومه خیلی باشه و خیلی نباشه این اصلا بحث و تغییر نیست حالا من یک چون بیهوزه ازمون حال ایشان مراد ایشون واسه بشه ان شاء الله تعالی یعنی بگیم یک مطلبی ایشون میخواستن بگن اون مطلب درسته ولی در مانعنوی انتبار نداره اما اصل مطلب درست به هر حال دین در اصل عبارت تغییری ماکان الا احنابولای اتبازدت قابل عدم ملکه قابلیت وقتی شون میتونم قابلیت در کل مورد نیست مثلا و مثلا خودشون مراجعه من وقتی بندی میشه و تریف خلاصه اینه که مراد القابلیت قابلیت موردی نیست مثلا ما علم بحشی داریم چون علم بحشی ها داریم خب اطلاق میشه مثلا بگید زیگ رو اکرام بکن که علم ها اما ها داشته ال مثلا به باری فعله علم به باری فعل نداره و خب وقتی علم به باری فعل نداش اطلاق به اله‌هاز نمیشه اما به لحاظ علمش شر نداره یشون یک خلاصه‌جیه مثلا ایشون میگی که مثل یکی مثلا یکی قابلیتی داره مثلا علاسه انسان غیر قابل استثناز بالغ روی علت تیاره مثلا از حرفات رو و ما از ولج صح استثناز رو بلع زمان یعنی ان انسان آج چرا همون قابلیت کلی جمله این قابلیت به قابل قابل جمله که باید میکنه همین که انسان قادر هست بس این قابلیت کلی جمله مراد ایشان قهر هست نه قابلیت باشه کافی میشه و اگر انسان قابل به اتساق به قدرت این جمله اینا داریشو به زیر که جمله کلمه رو به کار می‌بردن بهتر بود یعنی همین که قدرت پیارا قهر به قدرت نبلسه میتونیم بگیم که عاجز هست به این نکته یه دنبال همین بحث بعد برد الان یکون خلاصه بحث. و علیه که استحالت و به اگر یک جایی تقیید مستقید شد پس هر ضروری اطلاق یا باید اطلاق باشین چون چه اینه بیگن هر جا تقیید مستری شد اطلاق ضروری اینجا اینه اضافه کردن اگر تقیید به زدی یا تقیید به مثلا اگر گفتن علم مقید به علم خب مقید به علم میشه مستحیل یکی دیگه واضح یاد یا باز دیگه مقید به شغله یا اصرار داره به لواز علم و جهل مثلا استحالۃ الجهل لله تعالی چون مستحیل جهل برای خدا تخلزن زون چون خدایی که مستحیل جهل بشه حتما قطعاً آدمه خب استحالۃ تغییر خلق به تقصدی ضروری مثل اطلاق او تقیید به زدهی از سنجه های اینه اگر تقیید مستحیل شد اون وقت اطلاق ضروریه اگر تقیید به علم مستحیل شد این کلمه تقیید به زدهیر اینجا اضافه کردن شد و ذکر ما نا تفصیل داره این تفصیل به این معنی اونجا ننیارده اینطور که اینجایش ننیارده سطح المقام حیث و انتقیید به علم بهی، به علم به حب مستحیل هم جردش هم می چون علم مستحیل تو جردش هم می کنید مستحیل بس یا باید ضروریت جرد باشه یا ضروریت تقیید به جرد یا ضروریت اطلاق پس میشه اطلاق پس احکام مطلق هم به همون دقیقه لعب اقمه صلاح لدود که شمس این مطلقه شما آلم باشه یا نباشه نگید اطلاق نداره بگیر اطلاق اصلاح داره این چه. چون قید به علم نمیشه قید به جهل که نمیشه پس اصلاح کردن میکنه چرا چون گل احمال در واقع معنی نداره بله چون هم بله ایشان ها این شر سو و از ظاهر دماده اینی که فساد دماده کرده همون سه حتی ولذا ولی از این که میفهمن به نتیجه به متمموجعل همون اشغالی که الانشون ایشون میگه وقتی اطلاق ضروری شد دیگه جای متمموجعل نیست. چون متمموجعل ها چهار بودن؟ ممتمموجعل چهار بودن. یا نتیجه از اصلاح کودک اصلاح داره یا نتیجه از تغییر با اطلاق آمون منافیه شما میخواید از متمموجعل خود کتاب اصلاح کنید؟ این راجع به این مطلبیشون. این مطلب رو موده تغییر بکنیم که کمی طول بکشه. به نظر امروز نرسیم اگر وقت بکنم من یک تحیل راجع به مثالی که مرگوم ناینی گفته این مطلب اختلاف مرگوم اصفاد ناینی رو من امروز که میگیر آمدم فکر نمیتون رو روز روزن درستم بعد راجع به مثال جهر و اصفاد یا قصر و اصما میگم فتیه اما مازکرهو منع امنال امن لیسه کذاله دیگری که تغییر به ایم کردیم. غایت <سؤال> ما یه سکادمونه ادله هواه اجازه آهده ما هنر آخر. اینکه آن نماز سانه دلیل اینه. اون حکم الابی برای این این بوده که نمازها رو اخفاء نم بخونیم. حالا جهرمی بود خطر جهرم تو. و ولی حکمش این بوده. و این جای اون میشه. و اجزاء و تمام ان القرض اندلج به. اگر من به شما بحث کردم در جهه اخفاد هر کدوم مکان دیگری درسته. نمازی که اخباط نماز ایشان ایش اخفاد می‌کنه نماز اخفاتی رو جاهر اما تو قصد و افهام خصوص افهام تو موضع قصد اشتباه اشتباهه. مثلا رسیدش این بوده که قصد بکنه جاهل بوده تمام خونده. اینجا نمازش درست اما عرض جون نماز تمام بکنه قرص بخونده اونجا میگن جهر اونجا موسیقی در از دیعه باره هم مسترق رو بردن ایشون بگه به اجزاء تمام ان قرص این در بره, بره اونجا از اهده همون آخر اینجا در خصوص تمام در قرص لا اختصاص و حکم به نه اینکه اختصاص و حکم به باشه چرا؟ چون اجتزا اشارع در م بنجاه تیم لا <تصفيق> نظر من هم رضری مقرر خیلی مجمل یا واقعا استاد مجمل فرموده. این یک نکته ظریفی داره که بعد ان من توضیحات مفصلی ارزم می‌کنم چون مرخصتشون از اینکه فرمودن اون فصل تر کرنما استاد میخوات بفرما شما دو مرحله رو به هم خلف نکني که مرحله جعل که مرحله انتصاله. اون که منش خلق شده این اونی که علم و جعل موثر شد تو مرحله انتصاله، نه تو مرحله جعل تو مرحله جعل آمد فرمود مسافر نماز قتل بکنه این تو مرحله جعل اینجا حکم مغید نیست و این آمد تو مقام امتصال گفت شما اگر نادان نمیدونستین حکم رو و نماز با تمام کنید، این مجزیه این کافیه دقیقا میگم نهو مقررش توضیح از ظاهرم مراد و استاد اینه خب ازده فرمشونم وقت کنه من از خوزی من میدم شد یه شما روشند بشین شد روشن شد اشاره کی مقام الانتصاب خود دفت بکنیم به جمعه موزل لاید لا, لا الله بالعالم خیلی واضح و سریع نیست لیکن ظاهرم مرادی ایشان فکر میکنم روشن شده میگه ما بحثمون تو مقام جهر تو مقام جعل گفت این گفت برای عالمه تو مقام جعل گفت انسان و مطافق قفت میکنی تویش نداره که عالم بعد آمد گفت شما اگر نمیدونستی تمام کندی اشکال داره ای جای نماز اون. جای اون نماز این تسرم و پشاره روشن شد نفتی فرمی تو مقام انتصاله یا تصرف بشه تو مقام جل من رو دارمی تو نفیل ایسا تقیید تو نفیل تو مقام جل تصرف بشه معنای نفیل تقیید تو مقام جل ایشون مخابی فرحلی این تصرف تو مقام امتصاله ره تو مقام نداره مقام از از از خب میشه دایی تصرف بخالت بکنه جلد. برد سباق میدونم اما اشتاره که دفعه از رو کنه نماز اینجا نماست تو من اینجا من مجدی دو تا را شد اختلاف مهمونه اینو با استاد نه میخواد بگه وقتی آمد گفت شما در سات جهر نمازه تمامتون درسته یعنی اون هوف رو تصرف در مقام جعل تصرف کرد استاد میخواد بگه نه تو مقام جعل تصرف نگرد تو مقام انتصال تصرف کرد. حالا مهم دل این کار خیلی از بحث قاعده ای رجوع به لسان دلیل لذا ایشو بگه و علی اندل عنوان المذکول به روایه روای اینطوره لو جهر فی ماینده ای پیل اخفاد او اخفت فی ما, و و ما ایشو بگه ماینده پیل اخفاد کنه ما حفن اخفاد بوده حفن عوض نشده لیکن این مقام انتصال جهره پس این رو شما ارجاع بدین به مقام انتصال این نزیر رو تغییر نیست که شما گفتید چون نزیر تغییر باید بگیر مقام جرم نه ایشون مخواد یم بقیل اخفاسفی یعنی چی یعنی خودش این محل اخفاسه یعنی حکم اخفاس مخواد لیکن تو مقام عمل این کاری شده کردید و هذا در ظاهرا را دارم پی سبوته حکم ال حکم بله ما و انتحصیل بلی اگر جاهل مقصر باشه استحقاق ایراب داره که اینها علاوه تقریبا اقتصاد و حقوق لا معنا جاهل مسحکن در چی ای بحث این جوایدشون شال خودشون به کرده این بحثش نکته ای نیست حالی اون دیگری داره و اون نکته نسیه اصولاً بحث جادل ان تخصیر رو میگن جادل نیست ادله جهر رو نمیگیره یه بحث دیگه مثلا رفعان اممتی مالای علمون جادل مقصر رو نمیگیره یا, یا عالم عالمون رو میگیره من افتر متحمدن این بحثی که از اینه این نقطه که ایشون فهمید در ریل کلامشون خیلی روشن خب ما یه بحثی الان اول این بحث قرار بدیم تو این مثال هم اون بحث ک بحث کبرا رو بشن شد کبرا این هست که مردم ناینی می احکام در جعل اولیشون اطلاق هم ندارن تقیید هم ندارن به علم استاد می تواند اطلاق داره اطلاق به علم و جهر حقیم اصطلاق که برای عالم و جاهل هر دو است سوال اینه که آیا هر با این قول یا حق با اون قول به که کار اطلاق دارن که آیا خویی از کارم این بحث بحث قانونی بسیار یا حق با نائینی که اصلاح نداره این یک دو نایی میفرمون با نفیه تقیید میشه آیا با نفیه تقیید میشه دلیل اشکال اشکار ثبوتیه با نفیه تقیید نمیشه اگر تقیید هم آمد لازمش مقام انتصاب. تو جرد دستش نذیه درستن تو جرد دست اگر هم آمد که شما جالب بودید حکومتونی اینه اینو بزنین به مقام انتصال اما مقام جهل، یا اصلاح دشتو بود هر چیز شدی با حال خودش محبوب است. و هم جهل اول تقنید. خب همین نایین میگید مقام اتصال نظرند، مقام جهل نظرد. آل خویی فهمی جهل این منشون مقام اتصال خود. نه دیگه، حکم اولی که یعنی با جهل او عوض نمیشه حکم فقط تو مقام اوت سال جهل گوشن یک من در بحث به خودم اشاره کردم یک آیا تفسیر قانونی که ما میدیم خودم درسته حالا کار به روایت نداریم دو از ادل نشیدر میاد شو؟ یک یک تحلیل و تفسیر قانونی خودمون اصلا کار به روایت هم نداریم دو از ادل نشیدر میاد هرز می هر مرموم نایمی درمیاد یا هرز مرموم استاد قدس الله نفسه یا به یک این درمیاد به یک تردیل اون میاد هر کدوم ممکنه اثباتش شد درست شد این نکته رو پرده اما این نقطهی که ایشان راجع به جهر و اخفاد و قصر و اطمان فرمودن، امید این ساعتم خلال رو من همیشه شده همون شده و بر برده ها درست اصلا که اما این مطلب اینکه ایشون من این اجمالان می کنم بر تفصیل این ظالم از بین بحثم نمیست اما راجع به قصر و این رو من سابقاً چند بار ارز کردم ما راجع به قصر و یک روایت با عنوان جهالت داریم بعدم در کتاوا جهل آمده و یه تابقه یا داردم اون بحثی می باشم اما عمده روایتی که ما در قصر و داریم همه روایتی و این است که مرمون صدوق آوردن این قسمتشون هم کلیت مرمون و اشیخ توسی آوردن کلیه نیوردن خلاصه اینه که از امام سوال میکنه که اگر ایشون رفت در سفر و نماز رو قصرن, قصرن تماما کن حضرت می فرماد این کار نقدر علیه آیات و تقصیر و فست رفت لحب اگر آیات تقصیل برش خونده شده و تقصیل شده این فست چون آیه تفسیر از نیاز لاجناه تفسیر شده که مراد از لاجناه یعنی قصد و شما لازمه نه اینکه قصد جایز باشه مثل شدن سنت این فسرات بناشی این نماز شب رو اعاده بکنه اگر نه نه یعنی مخال اعاده اون روایت اینه اس خود بر علیه آیت تفسیرا فسرات نه این روایت رو کلا مروونات نه نیاورده من از کلامش هم این یه روایت نسبتاً مفصلی است. چند روایت، چند فقره داره این روایت، چند قسمت داره. قسمت اولش اینه که از امام سوال می‌کنه: از سوجاز متین، غصب لازمه. وقتی که تو آیه قرآن لا جناحه، امام میگه اون آیه مبارکه که دیگر داره در صفات مذهب انشاءالله من حج ال بیت، به تمام خلا جناحه علی. اینکه سعی بین صفا و مرو واجبه، بازم به جناش شده. ممکن یه باشه، تعبیر به لا این یه قسم. این خوراک آف اول مقاید چیز اوله خوراک آف اول که یعنی مثلا در دوم اسمه دومی درده باید سوال اینه که آیا اگر نمیدونست و نماز تمام خون امام این جواب روی هست درشون کردیم امام این جواب ذکر کرد. یک قسمت سه بوم داری کردون تو ذهن من نیست این بباید سه بخش داره در کتاب بباید ب که برسی هم داره کار سر بسیاری یا نه مشهوره به نقاقات هم اینجور ما اشکاده دارد بخش سه بخش شیش خودون در کتاب کافی نیامده مرمون کلیونی اصلا کلن نزبات نه برده خیلی نیواز مشهوره ایلا جنا اما مرمون کلیونی دارده شنر داره که شنر مرمون کلیونی کلنه مرمون شیش توسی بخش اول نه برده دوم رو برده. بخش اول و خیلی هم چون تو این بخش دوم داره امکانت بار از علیه آیات تفصیل ها پر سرده این تفصیلش تو بخش اول بوده خب شما بخش اولی دیگه بیایی مرموم از کلیه هر دو آورده مرموم از هیچ نیم آورده. صدو نیورده مرموم صدو شیفتوسی فقط بخش دومش رو آورده اون در این مسئله یه اسم. مردوم کلهی روایت دیگری ورده که چنگی هم هست اونجا هم تفصیل میده اگر در وقت عاده بکنه در خارج وقت نکنه توی جلو و پس جهل و قیموجلی او شش است که بعد به بی دعواب فرضی مردوم کلهی روایتی به این معنا که اگر در وقت فهمی نماز تمام خونده اعاده بکنه اگر وقت در آمده ازانه کنه، نمادش بود. این روایت که در قاعده این شد، شن مادام در وقت خلاف تکلیف کرده انجام بده بعثم که خارج شد، قضا به آن را جدیده، قضا به آن جدید. دلیلی بر قضا نیامده، اصلا داره از قضا جلو میشه. این ربطی به جهل و علم، و اصلا ربطی به این بدنگی نیم از اینکه اندو جواب اخضاد و اصلا کلر نداره. روشن شد تا اینجا. مرموم شیخ توسی مرموم کولینی این برایت رو آورده مرموم صدو اون روایت برایت علیه آیت تفسیر آورده مرموم شیخ توسی یه هرگر آز نظرشون سه یه هرگر آورده بعد از شیخ توسی این لحظه چونده خدمت رو میشه تا از کمه ها دنبال شیخ توسی رو درده نه دنبال شیخ کولینی من چنده برد که مشهور شد تا سال مقلل نشده تا الال آن شیخ نه فا... چرا؟ چون شیخ تو بین جمع نکنیم چه مشکل داره؟ نتیجه جمعش این شد که اگر خارج وقت باشه مطلقا قضا نتونه توی وقت باشه جاهل باشه قضا نکن آلم باشه قضا نتونه این بین سرواده جمع ت مبدع کجا بوده پس این مطلب که علم و تاثیر تأثیر داره این اشکال مرمونای از و تقییر این بحث و اصولی روی خواهی این تمام روی قبول خود حکمه حکم رو از کردید مرمونات کلی اصلا قبول نداره و اصلا دنبال این بحثیر جاهل باشه و عالم باشه اگر در وقت باشه عاده نبا کنه اگر در خارج جو رفت باشه نباشه باشه پس دیگه این مثال که حالا اینجا جهل و اتمام و جهل و ملان فکر و اتمام این منشأش مثل جهل است و علم است و تغییر به علم است هیچ کدام از این بحثا نمیاد این بحثا چرا آمد؟ یکی اون کلام مروم و البته اون آیه ارز کرده اون روایت مرهت علیه ها و تفسیر را فست رفت لده توی جهل نیست روایت دیگری که سندی نظر و اونجا جهالت آمده در اینجای دیگه هم آده آدم من واردون وقتی میشه وقت اون روایت هم شما میتونید مثل مثلا قرآن علیه آیت رو من عرض میکنم این احتمال. اصلا شما ممکن است اون آیه مبارکه رو اصلا معنی نفیم به جهر بگیم قرآن علی آیت تخصیر چون طور کسی نگفته از میکنم و خستدرده این کنایه باشه این اصلا مراد آیهان کنایه از جهل گرم نه این کنایه از شیعه و سنی باشه قرارد علیه ها این اگه شیعه باشه هر ما رو ما گفیم لاجونا همینه یکی باله اگر شیعه بوده این نمازش عاده بکنه قرارد علیه اما اگر این تفسیر نه این تفسیر نه یک جاهل باشه نه شیعه یه یعنی سنی باشه یک نفر سنی رفید از سفر نمازش تمام خونده چون آیه تفسیر بود. این نماده درسته این دیگه آده نمیخواد؟ اصلا قرآت علیه ها آیتو تقصیل و گسرده یعنی چی؟ این کنایه از چیه؟ علمای ما کنایه از جهن یعنی شیعه جاهل یا آله درد گرده او رو اداری با خود سرده این شب سنی چون سنی ها میان لاجون های اشتار ندارد زاهر شیعه رو تو جهل سوال شیعه رو اگه اگر سوال شیعه خب این تفسیر از ائمه عملو دیگه لامقام گفتو نه و سرت له این دفعه لهو تفسیر پس یعنی علمی شویم باشه اگر شیعه نمازش نماز قضا بگو دو بکنی اگر سنی نماز نمیخواد نماز بگو روشن شد از سلمان من خیلی هم تسوار داند این بنده قبولت هست. من که این تخصیص بنده قبولیت من احتمال دارم که این رواهات مبارکه اصلا ناظر به جهل ایر نباشه این مفاد این رواهات این نیست که شیعی که فهمیده از این حکمش رفیده خوب دقیق بکنید یا این حکمش نرسید اگر فهمش از آیه یعنی حکم فکریش از آیه حجوبه نه که فهمیده خب خود رفیده بکنش تو اگر این فهمه نداره از آیه این یعنی سنی؟ اگر این فهمه از آیه نداره نباده شد؟ به قسم فهمه دیم؟ چون تالایی شکت نگفید ام در این باید باید که اصلا مراد اون حدیث مبارک این جهل و علم نباشه مرادش اختلاف تفسیر فقهی باشه اختلاف مبنای فقهی باشه مبنای فقهی مختلفه بحث سر ایوجعندگیه اگر از آیه وجود فهمیده اینو باز قس قضاشون از آیه وجود نفهمیده تخلیف فهمیده این را نما... این نمیشه این امکان نداره که این شتونیم صلی تم بذاره این یه احتمال بحث فقهی خواهد ان